شما سوره مبارکه بقره رو که دقت کنید آیات پایانی سوره تقریبا درباره ریبا انفاق و قرز یعنی آیات دوسه صفحه آخر سوره مبارکه بقره که بخشیش درباره یه رباست که پروردگار عالم به رباخورانی که واقعا قصد توبه دارن. یه دونه نصیحت داره و اون نصیحتش هم اینه که ربای گرفته شده ها رو برگردون همین. توبه دیگه نداره. با گریه و با توسل و با حرم رفتن و با کربلا رفتن گناه ربا از پرونده زدوده نمیشه همین نصیحت به ربا خوران. فلکم رؤوس و انوالکم روزی که گرفتن ربا رو شروع کردی، ثروت چقدر بوده؟ صد میلیون پروردگار میفرماید اضافه از این صد میلیون ها رو حالا جازه دخترت بوده عروسی پسرت بوده مکه رفتن بوده اروپا رفتن بوده سفرای تفریحی بوده خونه میلیاردی شده ویلای یه میلیاردی شده ماشین دیویست میلیون تومانی شده همه باید از این 100 میلیون کم بیشد این نصیحت پروردگاه یعنی خونه و ویلا تو ماشین تو خرجای عروسی های کلانی که برای دختر رو به کردی کل باید به اونایی که بهت اضافه پرداخت کردن برگردیم فلکم رؤوس و حال ممکنه یه بخور بگه من خواهم رو برگردوندم دیگه به کسی بده کار نیستم اما اضافه رو بردم از میلیون اون اضافه مجرول المالکه اونو باید داد به خانواده هایی که واقعا مستحقن و خرجشون به دخلشون نمیرسه اموال حرام دیگه هم اینجوره اونام یه دونه نصیحت در قرآن متوجهشونه که اون سرمایه اولیه مال خودت از اون روزی که با حرام اضافه کردی حالا رشوه دست اختلاس، تقلب سندسازی کل باید برگرده من یه وقتی تو ایام جوانی رفتم سراغ روایات توبه گفتم روایات رو دقت بکنم بیبینم اگر منبر برای مردم بخوام توبه بگم چه روایاتی رو باید بگم؟ یکی از روایات باب توبه که همون زمانا به نظرم رسید که خیلی حالیم نشد اما حالا حالیم میشه این بود که امیر میفرماید گناه کار سختیه سختی امال اینه که آدم میخواد در گناه به خدا پشت کنه ممکنه سختی بدنی نداشته باشه اما سختی معنوی داره پوشت کردن به فرمان خدا و به دستور پروردگار واقعا کار آسونی نیستش گناه سخته و سخت سختتر از گناه توبه کردن این رو من تو جوانیم نمیفهمیدم اما الان امشب با همین نصیحتی که خدا به کسانی که مال حرام رو هم انباشتن داره میفهمم که توبه کردن چقدر سخته یعنی چند رباخور ممکنه با این نصیت خدا توبه کنن یه زمانی صد میلیون داشتن چهل سال پیش حالا چارصد میلیارد ثروت دارن خداوند میگه صد میلیونشو ورد و میلیاردشو پس به چند تا رواخور توبه میکنم؟ هیچون کس توبه نمیکنم؟ قافل ز صبحانی چه حاصل؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ بود قدر تو افزون از ملائک تو قدر خود نمیدانی چه حاصل؟ میخوای با این عمر چیکار بکن آخرش میخواد چی بشه